هر جا که هستی با تمام وجود خود آنجا باش آیا ممکن است مثالهای بیشتری از حالت ناگاهی یا ناهوشیاری عادی و معمولی بیاورید؟ می توانی خود را هنگام گلو و شکایت چه هنگام فکر کردن و یا هنگام حرف زدن بگیری گلو و شکایت از اوضاع و احوالی که داری آنچه دیگران درباره تو گفتند یا بر علیه تو انجام دادند آنچه که پیرامونت می‌گذرد. وضعیت زندگیت و حتی وضع هوا گله و شکایت همواره به معنای عدم پذیرش آنچه هست است و باری منفی دارد وقتی گله و شکایت میکنی خود را قربانی تلقی میکنی وقتی علنا اعتراض میکنی تحت اختیار خودت در می آیی پس با اقدامی درست و با اعتراضی علنی و سریع اگر ضروری و ممکن باشد وضعیت را عوض کن یا وضعیت موجود را به حال خود بگذار و یا آن را بپذیر جزین یعنی دیوانگی ناهشیاری یا ناآگاهی عادی و معمولی همواره به نفی لحظه حال مربوط است البته لحظه حال شامل اینجا نیز می شود آیا تو در برابر لحظه اکنون به اینجای خود مقاومت می کنی؟ بسیاری از آدم ها دوست دارند جایی باشند غیر از جایی که هم اکنون هستند. این جای آنها هیچ وقت خوب و مناسب نیست. به واسطه خودنگری ببین آیا تو هم جزو این دست هستی یا نه؟ هر جا که هستی با تمام وجود خود آنجا باش. اگر اکنون و این جای تو قابل تعمل نیست و تو را ناراحت می کند سه گزینه پیش پای توست. خود را از آن وضعیت بیرون بکش دگرگونش کن و یا آن را کاملا بپذیر اگر می‌خواهی مسئولیت زندگی خود را بپذیری باید یکی از این سه گزینه را انتخاب کنی و باید آن را همین حالا انتخاب کنی آنگاه تبعات انتخاب خود را بپذیر عذر و بهانه نیاور منفی گرایی را کنار بگذار روح خود را تطهیر کن فضای درون خود را پاک نگهدار اگر میخواهی اقدامی بکنی از وضعیت موجود بیرون بیایی و یا آن را دگرگون کنی ابتدا منفیگرایی را کنار بگذار البته اگر ممکن است اقدامی که مبتنی بر بصیرت باشد بسیار مؤثرتر از اقدامی است که مبتنی بر منفیگرایی است عمل اغلب بهتر از بیعملی است به ویژه هنگامی که برای مدتی طولانی در وضعیتی ناشاد میمانی. اگر اقدام تو خطا باشد، حداقل آزمونی است که میتواند به تو چیزی بیاموزد. ما میتوانیم از خطاهای خود نیز درس بگیریم. اگر در وضعیت ناشاد خود باقی بمانی و کاری نکنی، چیزی نمیاموزی. آیا ترس مانع آن میشود که کاری بکنی؟ به ترس خود اقرار کن. آن را ببین، توجه خود را به آن معطوف کن، با تمام وجود نزد ترس خود حاضر باش، اجازه نده ترس تو خود را به ذهن تو بکشاند، از نیروی لحظه حال استفاده کن، ترس نمیتواند بر نیروی لحظه حال چیره شود، اگر واقعا نمیتوانی توانی کاری برای دیگرگونی اکنون و اینجای خود انجام بدهی، و نیز نمیتوانی خود را از وضعیت موجود بیرون بکشی پس با کنار گذاشتن مقاومت درونی اکنون و این جای خود را کاملا بپذیر بدین سان خود ناشاد و دروغینی که احساس بدبختی، بیزاری و تاسف به حال خیشتن را دوست دارد نمیتواند باقی بماند معنای تسلیم همین است تسلیم به معنای ضعف نیست نیروی عظیمی در تسلیم نهفته است تنها آدمهایی که رضا به داده دادهاند و گره از جبین گشادهاند نیرومندند به واسطه تسلیم و رضا درون خود را از بند شرایط و موقعیتها میرهانی آنگاه در میابی که شرایط و موقعیتها بی آنکه کاری کرده باشی و خونه دل خورده باشی دگرگون می‌شوند. در هر حال تو آزاد و رها خواهی بود آیا کاری هست که تو باید انجام بدهی و انجام نمیدهی برخیز و آن را همین حالا انجام بده وگرنه بیعملی تنبلی و یا انفعال خود را در لحظه حال کاملا بپذیر اگر این تنها گذینه باقی مانده توست خود را به دست این گزینه بسپار به اعماق آن برو از آن لذت ببر، تا جایی که می توانی بیعمل و تنبل باش. اگر به طور کامل و آگاهانه به اعماغ این گزینه بروی خیلی زود از آن بیرون آیی یا شاید هم بیرون نیایی در هر حال دچار تزاد درونی مقاومت و منفیگرایی نخواهی بود و این دستاورد کوچکی نیست. آیا دچار فشار عصبی هستی؟ آیا آنقدر دلمشغول مشغول آینده‌ای که لحظه‌ی حال را به وسیله‌ای برای رسیدن به آن تنزل دادی، فشار عصبی نتیجه‌ی آن است که اینجا باشی و بخواهی آنجا باشی، یا در لحظه‌ی حال باشی و بخواهی در آینده باشی. این ترکی است که تو را از درون بدونیم می‌کند. ایجاد این ترک و زیستن با آن حماقت است. اینکه همه به این حماقت دچارند از زشتی آن نمی‌کاهد اگر چاره‌ای نداری پس با سرعت وارد آن شو با سرعت کار کن یا حتی فرار کن اما از فرافکنی به آینده و یا مقاومت در برابر لحظه اکنون اجتناب کن این کارها را با تمام وجود انجام بده از انرژی جاری لحظه حال بهره شو حالا دیگر دوچار فشار عصبی نیستی. حالا دیگر شکافی در درون تو وجود ندارد. فقط پذیرش یا کار یا فرار و لذت بردن از آن وجود دارد و بس یا اینکه می توانی همه چیز را رها کنی و روی نیمکت پارکی بنشینی اما اگر این کار را کردی ناظر ذهن خود باش. ممکن است ذهن تو به تو بگوید تو باید کاری بکنی. تو داری وقت خود را هدر می دهی، ذهن خود را تماشا کن، به آن بخند، آیا گذشته بخش عمده توجه تو را به خود اختصاص داده است، آیا اغلب به گذشته فکر می کنی و یا درباره آن حرف می مثبت یا منفی فرق نمی کند. دستاوردهای های بزرگت، ماجراها و تجربه هایت، حادثه های جفاهای دیگران نسبت به تو، جفاهای تو نسبت به دیگران؟ آیا روند فکر تو، احساس گناه، قرور، بیزاری، خشم، افسوس و دلسوزی نسبت به خود را در تو موجب می شود؟ در این صورت تو نه تنها احساسی دروغین از خود را موجب شده ای. بلکه با تلمبار کردن گذشته در روح خود روند پیر شدن بدن را سرعت بخشیده ای به آدم هایی نگاه کن که در پیرامون تو هستند و خیلی سفت و سخت به گذشته چسبیدند آنها شاهدی بر درستی مدعای منند هر لحظه نسبت به گذشته بمیر تو به گذشته احتیاجی نداری فقط هنگامی به گذشته رجوع کن که در ارتباط با لحظه حال باشد نیروی لحظه حال و کمال هستی را احساس کن بر قلم سون خطایی نرفته است حضور خود را احساس کن آیا نگران هستی؟ آیا دغدغه حادثه های محتمل آینده را داری؟ تو خود را با ذهن خود یکی انگاشته و این خود دروغین را به وضعیتی در آیندهای خیالی فرافکنی کرده ای و موجب ترس خود شده ای بیتر تو از پس این وضعیت خیالی بر نمی آیی زیرا این وضعیت وجود خارجی ندارد این وضعیت شبهی ذهنی است با حضور در لحظه ی حال به این فرسایش احمقانه جسم و جان خاتمه بده نسبت به تنفس خود آگاه شو هوایی را که به درون بدن تو وارد و خارج می شود احساس کن میدان انرژی درونی خود را احساس کن، لحظه ی حال تنها واقعیتی است که باید با آن مواجه شوی. از خود بپرس که در لحظه ی حال و نه در سال آینده فردا و یا پنج دقیقه دیگر چه مشکلی داری؟ لحظه ی حال چه عیبی دارد؟ تو همواره با لحظه ی حال طرف هستی نه آینده تو هرگز با آینده طرف نمیشوی. پاسخ ها؟ سرچشمه توانایی و یا اقدام های عملی درست هر وقت که بخواهی در دسترس تواند همین جا و در لحظه اکنون نه در گذشته و نه در آینده. یک روز به چنگش خواهم آورد. این چیزی است که همه فکر و ذکر تو را به خود اختصاص داده و باعث شده تا تو لحظه حال را به وسیله نازل برای رسیدن به چیزی در آینده تبدیل کنی این کار شور و سرمستی را از کارهای اکنون تو می ستاند تو همیشه منتظری تا یک روز زندگی را شروع کنی اگر با چنین الگویی در ذهن خود زندگی کنی به هرچه و هر جا که برسی باز از لحظه اکنون خود ناراضی خواهی بود آینده همواره برای تو بهتر از لحظه ی حال خواهد شد این دستورالعملی است برای نارضایتی دائم و احساس ناکامی آیا این گونه نیست آیا به انتظار مدام عادت کردی چقدر از زندگی خود را در این انتظار صرف کردی؟ البته انتظارهای کوچک بد نیست مانند انتظار در صف اتوبوس اداره پست فرودگاه یا انتظار برای مسافری که قرار است بیاید یا کاری که قرار است تمام شود و غیره. اما انتظار برای تعطیلات آینده، شغل بهتر، بزرگ شدن بچه ها، رابطه معنادار، موفقیت، پولدار شدن، مهم شدن، روشن شدن، انتظار خوبی نیست. بسیاری از آدم ها همه عمر خود را صرف میکنند، تا شاید عاقبت به روزی برسند که بتوانند واقعا زندگی کنند انتظار حالتی است از حالات ذهن انتظار اساسا به معنای آن است که تو آینده را میخواهی لحظه حال را نمی‌خواهی آنچرا که داری نمی‌خواهی آنچرا میخواهی که نداری با هر انتظاری نزایی در درون میآفرینی بین اینجا و اکنون خود جایی که نمیخواهی باشی و آیندهی ای که فرافکنی کردهی جایی که میخواهی باشی این نزاع باعث میشود که لحظه حال را از دست بدهی بدین سان از کیفیت زندگی تو کاسته میشود البته هیچ عیبی ندارد که برای بهبود شرایط زندگی خود بکوشی تو میتوانی شرایط زندگی خود را بهبود ببخشی. اما زندگی خود را نه زندگی اصل و اساس است زندگی هسته هستی توست زندگی فی نفسه کامل و تمام است وضعیت زندگی تو عبارت است از شرایط و تجربه های تو هیچ عیبی ندارد که هدفهایی را برای خود تعیین کنی و برای رسیدن به آنها بکوشی اشکال در این است که این ها را جانشین احساس خود از زندگی کنی و آنها را با هستی اشتباه بگیری لحظه حال را وسیله کنی و را به پای آینده بریزی در این صورت به معماری میمانی که بدون توجه به شالوده ساختمان همه توجه خود را به ساختن خود ساختمان معطوف می‌کند برای مثال بسیاری از آدمها در انتظار خوشبختی به سر می‌برند خوشبختی چیزی نیست که در آینده به سراغ کسی بیاید خوشبختی زمانی حاصل می شود که تو واقعیت حال خیش را بپذیری آن را مقتنم بدانی جایی را که هستی کسی را که هستی چیزی را که همکنون داری زمانی که کاملا آنچه را که داری بپذیری با حسی از شکر و امتنان نسبت به آنچه داری زندگی می کنی شکر آنچه را که هستی بهجا میآوری و شاکر هستی می میشوی. سعادت حقیقی اقتنام فرصت کنونی و کمال زندگی در لحظه حال است. خوشبختی ساکن آینده نیست. بنابراین، خوشبختی سر وقت خود را در صورتهای گوناگون جلوگر خواهد ساخت. اگر از آنچه که داری راضی نباشی، یا از بیچیزی خود ملول و خشمگین باشی این احساس تو را برمیانگیزد تا ثروتمند شوی اما حتی اگر میلیونها دلار ثروت نیز نصیب تو شود باز احساس بیچیزی خواهی کرد و در اعماغ وجودت خود را ناکام خواهی یافت می میتوانی خوشیهای بسیاری را با پول بخری اما همه این خوشیها میآیند و میروند و باز تو را همچنان گدای خواهش های جسمی و روحی باقی می‌گذارند. اینها چیزی نیستند که تو را ساکن وجود کنند و تعم سعادت حقیقی را به تو بچشانند. بنابراین از انتظار به عنوان حالتی از حالتهای ذهن دست بکش. وقتی می داری به حالتی از انتظار می خزی، از این حالت بیرون بیا، به لحظه حال بیا فقط باش و از هستی خیش شادمان باش اگر حاضر باشی دیگر نیازی باقی نمیماند تا انتظارش را بکشی آنگاه اگر کسی بگو یدد که ببخشید که در انتظار نگه داشتم تان خواهی گفت خواهش میکنم من در انتظار نبودم من فقط اینجا ایستاده بودم و از حضور خودم لذت می بردم لذت حضور خیش در هستی بودم اینها فقط چند نمونه از ترفندهای ذهن برای نفی لحظه حال است نفی لحظه حال خود پاره ای از ناهشیاری عادی و معمولی است اینها معمولا نادیده گرفته می شوند چون جزئی از روال عادی زندگی آدمها شدند اما هرچه بیشتر وضع ذهنی عاطفی درون خیش را ببینی، و ببینی که چگونه به دام گذشته و آینده میافتی راحتتر راحت تر از دام زمان بیرون خواهیجه است. اما فراموش نکن که خود دروغین ناشاد که ساخته و پرداخته یکی انگاری خود با ذهن است با زمان زنده است. این خود دروغین ناشاد میداند که لحظه حال مرگ اوست و به همین دلیل همواره خود را مورد تهدید حضور در لحظه حال میبیند. خود دروغین ناشاد با تمام توان میکوشد تا تو را از لحظه حال بیرون بیاورد خود دروغین ناشاد مدام تو را به سوی دام زمان میکشاند